آن کس که به دست جام دارد سلطانی جمع مدام دارد آبی که خزر حیات از او یاف در میکده جو که جام دارد سر رشته جان به جام بگذار که رشته از او نظام دارد ما و می و زاهدان و تقوی تا یار سر کدام دارد بیرون ز لب تو ساغی آنیست در دور کسی که کام دارد نرگس همه شیوه های مستی از چشم خوشت به وام دارد ذکر رخ و تو دلم را وردیست که صبح و شام دارد بر سینه ریش دردمندان مندن نمکی تمام دارد در چاه زغن hauf حافظی e John husne to du sett